بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والسيد المرسلين والاه وصحبه اجمعين اما بعد ده بحث بحث حديث حسن بود فانك حسن ده اصطلح علماء قديم ام صاد ابن معین احمد بن حنبل و خیلی از این میدیگر بحثی این بود که حسن را اطلاق میکردن بر متن یک حدیثی یک حدیثی که حالا اثنالش شاید درست باشه و با شاید درست نباشه در باره ایمتش مثلا میگوفن حسنه متن خوبیه یعنی هیچ معارضتی با عقل و شهر نداره شایدم شواهدی یا مطابعاتی هم شاید داشته باشه این بود که ما گفتیم حسن در اصطلاح متقدمین حسن لغویه. هرچند که امام ترمزی جاهایی حسن را به اصطلاح لغویش بکار میبره و جاهایی به اصطلاح چرد، به اصطلاح به به طریقی اصطلاحیش بگیم. این اون چیزی که در مباحث علوم حدیث اومده اون حد و اون تعلیم که برای حدیث حسن گذاشته شده. ما گفتیم که امام ترمذی موضوع اصطلاحی تعریف حدیث حسن در نزدش چیه که حدیث حسن حدیثی که ضعیفه حدیثی که ضعف درش هست حدیثی که راویانش متهم به دروغ نباشن، نسبشون خیلی ضعیف نباشه چون ضعیف جدا هیچ‌وقت در لایه حسن نمیرسه پس ما از شروط امام ترمذی این فهمیدیم یک حدیثی که ضعفش خفیف باشه، اندک باشه، با اونم ضعف در ضبط راویان باشه. و از تعداد فروق مختلفی اومده باشه یا شباهت داشته باشه این حدیث به درجه حسن برده همون حسن لغیره این تعریف اصلاحی حسن در نظر ما میترد بزید لیکن گفتیم جاهایی که میاد جنبندی میکنه و میگه این حدیث حسن و صحیحه یا حسن و غریبه احتمال داره که این حسن حسن لغوی باشه یعنی مثل حدیث حسن باشه خب میریم به اوزر درس امروزمون ادامه بحث ما قبل درسی تامیداکر ایجا که ایستاده بودیم بحث حسن تموم شد الان بحث حدیث ضعیف رو داریم یقول یقول المؤلف رحمه يقول المؤلف رحمه الله الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا ومن ثم تردل في حديث في حديث مناثن هل بلغ حديث الى درجة الحسن ام لا. بدل اريب فخر كثير من المتوسطين في الروايه في الروايه بهذه المسابقه فاخر مراتب الحسن هي افضل مراتب الضعيف اعني الضعيف الذي في السنن في كتب الفقهاء ورواياته ورواياته لين في المذكورين كابن الذي ذهب عبد الرحمن بن زيد من الاثنب وابي بكر بن ابي باجاء الحنفي وفرج بن قداله ورشيد و خالقین كثير بت تعرف حديث الضعيف علماء در بحث حديث الضعيف چنین میگن که حديث الضعيف حدیثی که حسن نہ یا حدیثی که کمی از رتبه حسن پایینتر باشه که این خیلی دقیقه یعنی اگر ما در تصحییم بندی احادیس نگاه بکنیم بالت رتبهش دحیق تک حد وسطش حسنه یک کمی پایین تر از حسن بیا میشه چی؟ ضعیف حالا اون زعفه که ضعف یه سیره. اگر ضعفش زیاد باشه چی میشه؟ چی مطروف یا میشه منکر یا مطروفی که حالا بعد از این بعد ضعیف خواهد اومد پس همچنان شدتش بیشتر میره تا میرسه در حدیث موضوع حالا ابن صلاح میگه اینا میگه که ميكن باید تعریف کامل‌تر بشه چون اگر حدیثی مثلا در فرض الله الله در اینجا که خیلی تعریف دقیق آورده امام ذهبی از درجه حسن قوی‌تر باشه ولی بعضی از علما گفتن که چی گفتن حدیث زید حدیثی که حسن نباشه ابن الراضی ایراد می‌گیره اشکال می‌گیره میگه نه حدیث حسن نباشه احتمال داره صحیح هم باشه در نظیر ما باید بگیم چی؟ حدیثی که حسن مستقی نواشه چیست؟ زعیف ولی اون چیزی که الان مدن نظر ماست و بهترین تعریفی که ما داریم تعریف ما مزدهبیه حدیثی که رضبش از حسن بیاد پایین کمی بیاد پایین تر نه خیلی ها چون اگه خیلی مستقی میشه زعیف جزد یک نظر به این ضعیف اضافه میشه خب این تعریفه خیلی عالی امام زاهبی میگه و من ثم من ثم تردید در حدیث اونات هل بلغ حدیثهم الى درجه الحسن ام لا میگه بعد شک و سردید در حدیث بعض از رابیان بوده که آیا درجه روایتشون به درجه حسن میرسه یا نه و میگه که تعداد زیادی از راویان که در دردی وسط قرار دارن آخرین مراتبشون اولین رتبه زعیفه یعنی اون راویان اون راویانی که ضعفشون کمه و پایین تین رتبه حسن را دارن و بالای تین رتبه زعفه یعنی زعفشون خیلی کمه ولی چی؟ حسن حسن میگه حالا از جمله این زعفه ها میکه ها به این رتبه زعیف زعیفی خیلی زعفش همرنگه اون زعفه هایی هستن که در کتاب های سنن قرار دادن سنن ابن ماجه و سنن فرمزی و دیگر کتاب های سنن و در کتاب های فقی اومده و رابیانش هم مطروف نیستن مثل ابن اللهیه ала исмашон оварде аз раҳмануну زیدул аслан хабиба фарнаи мадияи хамси ва фарж ибн фоз фазала ва рашидин ва халкаи катир ки ала тадоди зиёд атрабиан меоред алама ин макла мат назари ман боша сабт таҷаллу ва таъдил ҳилат мушкилот мунҳал бишад мо дар бахти таърифи ҳадиси саҳиҳ هو الذي يرويه عدل، ضابط عن مثله، من غير ما شدود ولا علا، درسل، هنجل شرح يرويه عدل، ضابط، اين دو تشارت كي بود؟ دو تشارت كي عن مثله استثال اثنات، كد بحث به اثنات من غير شدود ولا علا شرح، فمعلول نبوشك هم بإثنات و هم بمعثبار اياده ما وقتی که یک حدیثی میخوام نقدش بکنیم میخوام نقدش بکنیم نغذیمون بر چه اتاسیه؟ بر اساس راویان، بر اساس اثنان هرچند که بر اساس مدنم نفت میشه حد شاد مثلا بالفردی که سرقیدانی مخالفت میکنه که بعدم این ایک از وجوه تنه وجوه عدم زبط راوی هست وقتش حضوز اگر ما نگاه بکنیم وقتی که میاد یک راوی مخالفت میکنه بر به چی بعد به ضبطش میگرده و هم این بحث ضعیب و علم بعد بحث به ضبط راوی برمیگرده پس اون چیزی که در یک راوی انتقاد میشه مورد یا مدنه در ما در بحث حدیث ضعیب پس یک حدیث ضعیف که ما میخوام حد مرزد و تعریفش بفهمیم باید راویانی که به سبب اونها غوایت زعیب میشه اون راویان را درجهشون شون بدونیم باید بتونیم که اون راویانی که انتقاد شدن و حدیثشون ضعیف هست در چه رسواهایی قرار دارم و به چه علتهای انتقاد شدن در بحث عدالت که شرط اول راوی هست ما گفتیم به تعریف ادالت عادل یک شخص مسلمان بالغ و عاقلی که از اسباب قوارم مروبت که همون بیشرفیتی و فضل و فجور به دور باشه درسته؟ خب چه چی چیز سبب میشه این ادالت زیر سآل بره و اون راوی ادالت شخص بینده درسته یا اینکه که ما یک راوی را اصلاً نمی شناسیم مجهود اما بعضیها چون جهالت حد و مرز راست مشخص نیست یعنی راوی مشخص نیست داره ما بعض ها دانما گفتن نه در بحث عدالت منجان نمی شه نه در بحث زرد جهالت یه قصد مستقل لیکن امثال ابن حجب بحث جهالت را در بحث عدالت میارن چون عدالتش جاهل یک راوی مجهود عدالتش برای ما مشخص پس اولین چیزی که یک راوی انتفاض میشه شناخت حالش و شناخت عینشه چون جهالت می توشید برمگه جهالت عین و جهالت حال حالا این با حسید در وقت جهالت صاحب لیکن الان ما اینو مد نظرمونم که اون رابی شناخته شده باشه اون شهر اون شخصی که ما ازش نقل میکنیم و یا اون حدیث را به ما نقل کرده اون شخص همون شخص شده باشه پس این اولین نقل روی که روی یک راوی گرفته میشه نقلی که وارد بیشه دومین نقلی که روی عدالت میاد بدعه حالا شادی که аҷоб мекунад баъзе баъд чӣ рафти бадалат баъд ду наъат баъд та мукаффара дорин ва баъд та муфассада баъд та мукаффара ки дига фатиҳаш хонданд jahmi ва ра ба дига фатиҳаш хонданд ки мутлақан равад шу дуруст нест мимун як рави ки фасад мешавад дар фиҳти ташайю این راویانی کمی ارجاع داریشون هست کمی که میل و گرایش دارن به مرجع یا به تشیعی که الان در زمان قدیم بحث چی بود؟ بخش رو عثمان و علی کدوم یک اولاقر هستن به خلافت هست. بعضو علی را مقدم میدهستن که الانم ما شخص شیه مذهبی نداریم به اون تشیعی قدیما داشتیم راویانی که قبلا انتقاد میشتن الان چنان اشخاصی که چنان گرایش هاتی داشتن پس بحث بدعت برمیگرده به صفه یکروی. یک یکروی با اون بدع با اون مخالفتی که داره با اهل سنت، با اون بدعتش با, با پشت قرش به سنت سبب بشه چی؟ از اسباب فسق انجام داده باشه. و یا اینکه آها این صلاب دوم. آرا از کَم فل می‌گازیمه یعنی از اون رو بیان که له ضعفشون کمه. مجهول که کمه بدعت که بر خودش هم بازم درجه قدری کموزیادی داره یعنی پستیگی داره که اون راوی که که انتقاد شده نقد شده پستیگی داره اون بدعتش چی باشه و برای روایتش نه برای روایت شرط سروده باید بدعتش گفتی نباشه باید در ضمن بدعتش روایت نکنه و اون در نوع عبدت هاش دروب درست نباشه چون وقت رافضه مثلا میادی که دروغ در نظرشون درسته یا وقت کرامیه و غیره در نوع عبدت در نوع روایتی که روایت کرده همه اینها نگاه میشه خب دو سو مینندهی که میشه یک راوی بر اساس ازانتش فطه گناه مطلق دروغ، مثل اون راوی که قبلنم بیان شد، پیراهنش رو بالا ورده بود، گفت میگفت به حیوانش که بیا براس یونجه بدم یا علف بدم، بعد اون امام، حالا نبیدنم بخاری یک از امی دیگر، می از اون شخص که این دروغ به حیوانش به علاقش میده. میگه این شخصی که داره دروغ به حیوانش میده. از کجا معلوم که چی؟ رسده دروب نبنده گناه گناه دروب دادن گناه حالا چه به حیبون باشه چه باشه خب فسقه دروغ گفتن فسقه گناه گناه کبیره هست غیبت کردن و دیگر گناه ها که اگر ما بدونیم اون شخص اون راوی فاسقه در علم جرب و تعدیب اون روایتش چه رو توی خواهد گرم؟ منکر روایت فارسک روایت کسی که غفلتش زیاده یا غرطهش خواهشه منکره ما منکر رو خواهد من منکر زنو منکر داریم یک مخالفت زعیب فارسکه اینو با اول منکر که خواهدون من. نوع دومی که الان آمد در نظر ماست غفلت زیادی اشتباه یا اشتباهات بیش از حد اشتباهات فاخش به ثبت و میش گناه گناه کبی رو بستن فتق و فجور اینا حاضرش منکر اگر دفر رد ببنن یعنی یک روایت یا به تنهایی روایت بکنن این ردبه روایت شو چیه؟ منکره بحث به و جهالت چی بود؟ ردبه پایین بود ردبه شم؟ پایین بود. در چه رتبه بود؟ زعف. زعیب یکیه. خسن مجهور. لیکن الان کمکه هایی منیم بالا سنگین تر میشه گناهانشو. رتبه زعف احادثشو شدید تر میشه. منکرم جزد چیه؟ احادث چیه؟ زعیب جدن. چهارمین رتبه تهمت به دروغه چهارمین چیزی که یک راوی عدالتش زیر سوال میره چیه تهمت به دروغ متهم به دروغ باشه این رتبه این راوی در علم حدیث از حدیث این اشخاص به نام متروک یا مطرح یاد میکنن که میاد نوع بعدی چون الان امام ذهبی چی نشو کرده صحیح حسن ضعيف ذات كثيره کمی از حسن پوینت طرف مذه بعد از اون بعد از اون ضعفی که ما بین حدیث درو و ضعف یثیر فرق می زیب جدا مطرح یا متروح میاد در بعد از این بعد از اون بحث موضوع را میارد پس ثهمت به ده درو یکی از اسامی که چی یک راوی عدالتش از بین میره و در نتیجه حدیثش مطروح میشه یا مطروح میشه. پنجمه و بدترین و شنیعترین نوعه جرح در یک راوی دروغه. دروغ. یک راوی دروغه یه. روایتش چی میشه؟ موضوع. آفت این چود نقد و انتفاده در پایدالت یک اما نقضی انتقاد ها در ضبط بازم از پایین شروع می از خفیف شروع می کنیم خفیف ترینش سوال حضر بده این رضبش در همین بحث کل آن قرار داریم نقا کنیم بحثش به اگر به درد مفتقه باشه نمکفره بحث جهالت و بحث سوء یا یراوی که به طور مخالفت با شده یا این و این پنج رتبه ضعفشون یتیره چی شد؟ بداتم فصدت جهالت سوء حظ مخالفت با و بحث این پنج تا بخص الان مونه اون رابیانی که زعفشون کمه و روازشون ضعیفه یعنی اگر به فردانه چی کمک برازم میکنه مثلا به یک اثنالی دیدی یک حدیث رو دیدید دیدید که از دو طریق اومده طرریق اولش یک راوی هست سوول حظ در سییول حظ در طریق توم یکی از راوی ها مجووله این دو تا حزیث با هم دو تا طریق به دری حسن نمیرسن نمیتن پس اینهایی هایی که ضعشون یهره ضعفشون کم سییول حظ راوی متاحیم یا کسی که مخفت بر خاطره یا بدش مفصل ح یا مجبوله مجموعه سندواز تقریع میشه اما فاسق یا متهم به دروغ یا کسی که اشتباهاتش زیاده یا فاحشه هیچ وقت در درجه ایر روایتشون به جایی به حسن نمیرسه ضعفشون ضعفشون بسیار زیاده ما نگاه کنی در بحث مقاله کاتقد القهاد مت مخالفت استقاد از چیزهای مختلفیه نوع مخالفت گاهی مخالفت در اصناده و کاهی مخالفت در متنه مثلا به فرص بحث ادراجو داریم یک راوی را اضافه تر در اصناد میاده رایی کراوی یا در متن یک لبزی میاد شرخ میده ادراجه از گفته خودش میادی گفته را شرخ بده یا بحث قلب روایت را مخلوب روایت میکنه مخالفت است با سقات یا بحث مزید در متصل آسانی ده. روایت ها همشون مرسلا این میاد مختصر روایدش میکنه یا بحث ازدراف یک سرسه میاد یک بار این چینی یک بار یک طوری دیگه رواید حدیث حسن بطری که از امران رواید میکنه بحث سکوت رسول الله در های نماز بعد از خوندن ها. یک جا میگه قبل از خاطفه حدیث ناشت در سنان عبی داوده یک جا میگه قبل از خاطفه رسول سکوت میکردن یک جا میگه دو جا در نماز تسبیح ذکری که قبل از فاتحه یکی بعد از فاتحه یک جای دیگر میگه مثلا یک جا قبل از سوره پته یک جا بعد از تمام شدن قران یعنی سوره با و سوره بعدی که تمام کرد سکوت پیوردن بیان یک جا دیگر میگه رسول الله سه بار تسبیح کردن در یک وقت قبل از فاتحه بعد از فاتحه و بعد از خوندن سوره بعدی بعد از سوره پته استراوت خدا حتما یاد ذکر وات مرسل باید بکنه از ایران نشنیده дар риwayatш истироб доред дар риwayatш истироб доред дар натиҷа риwayatш заифа ва аз ин ле муқолифат бахти тасхих ва бахти таҳриф ки алафа ҳадма яъни баъд аз он ки мо баҳс фаҳдма бахти тасхих чӣ муқот тасхих мешад ва чӣ муқот таҳриф мешад در بحث انتقاد، در زبط، وهمه، توخم. پس اولی کسی حفظ بعد، یا سفی الحفظ، یا سفی الحفظ، دومیش دو مخالفت باستقاد، دو ثومیش وهمه، توهمه، که به این نوع حدیث میگن معل یا معلل، یعنی اگر یک اثنادی باشه که یک گنابی توهم بکنی در مد یا در اثناد، بین این حدیث چی میگن؟ معل یا معلل معلوله عیب و علت درشت یک از سختری مباحث الله خواهد خودم فاهد امدین مبحث یک از سختری مباحثی که در علم حدیث هست بخش علت عیب علت یعنی ما بتونیم عیب و علت یک حدیث چی ببار چطور ما می بفهم شده باید اثانید را کنار هم بذاریم بررسی اتناد بکنیم بررسی مذب بکنیم همه ای ها باید بررسی بشه تا این که بعد نتیجه گیری بکنیم و ببینیم که این راوی در کجا اشتباه کرده در من یا در اثنان و بزرگتر این کتابی در این باب نوشه شده چه کتابیه العلم تعریف امام دارابان چهار را می رس غفلهت بالسياره يا الغفلة غفلة غفلهت بالسياره يك راوي الان مثل ابن اللهيعي دليل رواه شوبرد دار اسمه شوبرد اني كعني الضعيف الذي ذكرنا ما كتب في كتب الدكتور الرواجه ليت مدركي المؤثرجين سامن اللهيعي وعبد الرحمن بن زيد بن اسيا ك رتبه حدیثشیه منکر منکر غفلتش که زیاد باشه بسیار باشه رتبه حدیثش منکر هیچمه در جه حسن نمی رسه و پنجمین و آخرین غلط فاحش یک روی دو چار اشتباهات فاحش و زشکی بشه این اشتباهات سبب میشه که باذن از حدیثش بس حدیث اون راوی که غلط اشو حشه نام منکر یاد بکنم. فقط سه تا راوی که احادث منکرند. دو تا در بحث ضعف، یکی در بحث عدالت، در بحث ضعف قفلت بسیار و غلط های خواهش حدث شمون و در بحث عدالت راوی فاسق مثلا یک مرور کلی می میکنم بازم اسباب جرح در یک راوی اسباب که یک راوی ضعیف میشه در دو, دو تا علت اصلیه یکی عدالت دومی هم زبط بحث عدالت برمیگرده به جهالت به دعد و فس و تهمت و درو و بحث زبط برمیگرده به حفظ بد مخالفت واسقات توهم یا وهم و غفلت رو و غلط های خواهش این پنج تا از سبب اصلی در در ضعیف بودن یک راوی در جمعه راویان از جمعه که الان ما اینجا داریم که راویانی که متروک نیستن مثل ابن اللهی اک متروک نیست ضعیفه عبدالرحمن بنزده در اصلا اختلاف در در ضعفش الا ذك شديد هست یا نیست دیگه نه اون چیزی که ما داریم از صفی بن حبان و همچنین ابن حجر اینی که متروکه عبیبه اب بکر بن بی مریم الحمسی بعضا متروکه ساره بن صلاله زئیده و رشدی نم بعضا زيفة أشديد بن السعد بن المفلح أبو الحجاج المصري جمهورة أمي حديث تدعي بشكرها زیف بحث وقتی که میاد در دنبال یا بحث حدیث حسن ما ورده چند بحث دیگر میشیم در خود بحث ضعیف ما گفتیم اون زعیفی که ما محوان الحنبل میگی که از رای بهتره برای من بحث حسن الان اختلاف در اینجاز ما اول حدیث زعیف رو فهمیدیم این راویانی که زعف درشون هست ما وقتی میاد این من را از اشخاصی که اشتباه در حفظ داره یا ساعتوبات من ندیدارن یا به و عللت های جرب شدن ما نگم این من را دلシナ شرطی دین تدیون میخواد دین تدایون میخواد دین امانت علمی میخواد دین حفظ و اطال میخواد اون راوی باید بدون چه چه داره روایت میکنه بفهمه چه داره رو میکنه خب اگر ما قید قیود را گذاشتیم برای راوی یک راوی از جمله راویان زعیب که ضعفشون کمه اومده یک روایت را نفکر نواه بکنید بحث روی روایت موضوع روایت مطلوب و ممکر نیستا اینا فاضحه شو خونده در هیچ مذهبی هیچ دیانتی درستیش درستید به هیچ جیف ضرورت نیست که بهش عمل بشه با داره هم مثلا وقتی فضای العمال مثلا به خرم ما انتقاد میکنیم میگیم که چی؟ شمایی که دارید به قول جنبور اتناد میکنید که حدیث ضعیف در فضای العمال اجکال نداره ما میگیم شما میگید حدیث ضعیف نه حدیث موضوع ضعیف یعنی چی در اصلاح؟ حدیثی که دستهش کمی از حسن پایین کرده باشه و به درجه مطروح و مطروک و منکر و موضوع نرسیده باشه. چون اگر به اون درجه رکید دیگه از زعب خارج شده دیگه رسید به حلاکت، به نابودی. دیگه اصلا کسی نگاه هم نمی کنه از علمان خدید. این بحث خیلی مهمید. علمان زحمت کشیدن، کتابها رو نوشتن، درجه راویان رو مشخص کردن، اقوان امیجر و تعدیر رو مشخص کردن درشت. کتابایی که نوشته شده در دین ثعفا و همینی متروکین مثل کتاب الضعفاء الكبير تعریف مهم عقیلی کتاب الکامل طبقات الرجال ابن عدي مجروحین ابن حبان همین کتاب‌ها در اصل تا اینکه چی ما برهان داشته دا باشیم در نزد خداوند متعال كلها برهانتهم من فتم صادقین یعنی که مرتدینون با اساس علمی و براهین شرعی باشیم اتناد داشته باشیم، نمز داشته باشیم ابن ملاقین در حسن مقنع چنین میگه میگه زعید، حالا بحث حدیث زعید گفتیم بحث مطروح و بحث نمیدونم مطروح و اونا دیگه نیست بحث زعید که از حسن کمی پایین پرمده باشه میگه که ابن ملاقین چنین میگه که در بحث احام به عقف فاید مطقا وج به خا ضعیف استال نمیشه اما در بحث غیر احامسته ها به خارج فضاییل اعال و ترب و ترخف اشکالی نداره او این چینین ما ن ازش هم نح امام امن منقل در این موضوعی که الان گفتیم در جایز بودن عمل به افاد زعیب در غیر از احکام در قصد یعنی نقل حدیث زعیب در قصد در فضای العماد در, در قصد که امام نووی اصاز یا تجویدش میکنه امام امن منقل نقدش میکنه میگه وقیه وقفه فا این نهوله میت فاستناد العمل الیه یها متوبته میگه این گفته یعنی این تجویذ یاد یه وقفی داره جایز بودن استناد به یک حدیث ضعیف نه ابن ملاقم نقل میکنه روتی به مولایی میگه قوله کی لا رکھتا ما قوله درست میگه فيتنادى العمل اليه اوه مت اوه مت ثبوته كده وقتی که داری یک حدیث در بضلال امان یا قصر یا هر صدایی نقل میکنی توهمی ایجاد میکنی که اون حدیث ثابت و صحیح نقل میکنه ابن العربی مالکی که میگوید ان الحديث الضعیف لا يعمل به مطلقا امام ابن العربی مولکی چی نیمونی که اصلا مطلقا درست نیست که چی به حدیث ضعیف عمل بشه و صحیح همینه که امام ابن العربی مولکی میگه اگر یک حدیث ضعیف باشه شوافد و متابعاتی نداشته باشه وزیری یک اصلی قرار نگیره از اصول صحیح نقلش درست نید و عمله به اون درست نیست مثلا بالفرد یک حدیث زیادی که داشته باشیم در بحث فضای عمل فلان ذکر رو مثلا هزار بار بگید یا پون بار بگید چیزهایی که اصدید ده الاحاديث الصحيح نبدا اي الدروس اللي كنقلش بكريين يا ند الدروس ديال بس ادعای این که این فضایل اعمال جز احکام نیست ادعای باطلی است. پس همه 500 بار و 100 بار هم بادم سکن. اگر ثقم باشه، اگر ثقم باشه و ادعای ثبوتش بکنیم، باید بر اون ادعایمون مدرک داشته باشید. حالا میمون این مدرک صحیح هست یا نیست. بس چرا بهش عمل می کنید؟ بس اگر مدرک صحیح نباشه اتناده باطل بشته باست نبیشه بهش عمل کرد حالا که این مسئله خیلی طولانی هست میتونید در بگردید مقدمه صحیح ترگو ترگو ترگید شفت آلبانی میاد مفصلن در این سح مباحثشو باز می کنه و ون اقول علماء صاحبك ولا مدرسه نسبه للنقل احفظ او حاسس مش اخذت مكينه و تاعتش مكينه طب بريمه لمن حفى عن مثلة الصعيف لا يروى في بعض الأثانيذ القوال في الأنفة في الأجزاء وفي السنة ابن ماجة وفي جامعة أبي عيسى مثل عبد ابن شم شمس عن جابل الجعفي عن الحالب عن علي وكثلفة الدقيقين عن صفة السبكين عن مرضة الطيب عن أبي رب ودويب عن الباحات عن المعطاة وحفظ ابن عمر عن الحاكنا من ابا عن عيسر عمر واجبا مذلك من المتروكين والهلكين وحل... والهلكة والهلكة وضعون أفضل من ما قفتم در بحث متروح بحث حديث متروحة من متروحة. متروح من متروكة كبن حدنا المتروك يتشميكونا الان مؤلف گفتیم ضعیف که کمی ضعفش کم از حسن آورد بعد از اون علان متروک بود هرچند که بین مطروب و ضعیف منکرم گونجنده میشه همونطور که من گفتم که این میشه لیکن سوال اینجاست چرا مؤلف اومد منکر را منتقلش اش کرد به بحث بعدی در اینجا نیوردش علتش اینه که منکر به بحث مخالفات میاد به بحث این یک راوی میاد مخالفت میکنه با بارو بارواید دیگر چون در بحث مخالفت و در بحث انتقاد در اثنان بحثش میشه یعنی جز افراد یا جز چیزهای خاصی که یک راوی روش انتقاد میشه به خاطر همین معلق به تخیرش انداخته هرچند که در اصطلاح خیلی ها مثل وعلامه امن حجر منکر رتبه ایست بین متروح و یا متروک و بین زعیف منکر به روایات کسی که زر صحبتش زیاده اشتباهتش زیاده و یا فاسقه هم گفته میشه بس بعد از رتبه ضعیف منکر میاد و بعد از آن متروک یا متروح میاد و بعد از متروک یا متروح هم موضوع بعض بحث مطروح حدیثیست که رتبهش از ضعیف پایین تر باشه. ما گفتیم که چی؟ حدیثیست که رتبهش از منکر پایین تر باشه. رتبهش از منکر پایین تر باشه. بین منکر و بین موضوع. آن میشه گفتم بین ضعیف حالا چون مطروح و منکر هر دوشون زعیف جدن هست. اگر ما در نظر بگیریم اول ضعیف داریم زفش یه سیره. بعد زعیف جدن داریم بعد موضوع داریم. از لحاظ ضعیف جدن بودنشون زعف شدید بودن متروف و مونکر هر دوتا شن در یک رتوه قرار دارن پس حدیثی که از رتوه زعیف یعنی زعف یکی پایین تر بشه زعف شدید بشه چی بهش میگن؟ متروف از این لحاظ که چشکاری هم نداره خب ویوروافی بعض المثانیر الطوال وفي الاجزاء بل وفي في سنن ابن ماجه وجامع الترمذي نيته از این جمل راویان و این روایت ها در خلال کتاب ها متون سنن ابن ماجه و جامعه ترمذی این روایت هایی که ضعفشون شدید هست وجود داره در این کتاب ها این چنین احادیث و این چنین راویانی وجود دارن مثل عمرو ابن شمر عن جابر جعف یعنی عن, عن علی رضي الله عنه عامر ابن شبيب ابو عبد الله الكوفي الشيعي امام الجرجاني شنو يقول زاغ كذاب ابن حبان يقول رافضي ينسب الصحابه ويروي الموضوعات عن الثقات امام البخاري يقول مركه الحديث النسائي ودارقطني يقول متروك خب جابر جوحي ضعيف جدا جابر ابن يدي ابن الحقق الجوحي رافضي و رابي محلوكي حارث حارث العوار امام الشعبي بيوية دروغوست و رافضي هم هات هل سلسل رابيانه متشيع و مترفض على غير مخيم راویانی که لا انتقال در چی شدن؟ راویانی که در عدالتشون انتقاد شدن همه این اینها همه اینها این سه نفری که در این ایثناد قرار دارن همشون ضعیف جدا هستند. سه تا ضعیف جدا در یک اسناد جمع شدن. در یک اسناد با هم جمع جمع شدن. ماگر ببینیم این تلتل راویانی که زعفشون شدیده و رافضی هم هستند در رضوه مطلوب قرار گرفتن ما در وقت بزعف گفتیم که چی؟ ران اینا مبتده هم هستن رافضی درست نیست؟ خود به درست رفت به درست خودش به درست کفری لیکن چرا راویانی این چینی روایت ها این چینی روا... مثلا این روایت چرا در درجه مطلوب قرار گرفتن؟ به خاطر این که عمرون عمرو شمر عمرون شمر شمر راپزی که هست که هیچ زائقون قردام هم جوزیانی گفته ابن حبان در بایداش گفته یروی الموقعات درسته؟ پس متهمه بدرود حتی یا نیست به دروغ هست پس اون رتبه یادتون باشه الان در بحثه اگر دروغگو بود که خاطرش خونده بود حدیثش ببوده بود لكن ان مسار را در وسط را بیان مطرح در اینجا آورد بخاطری که ما برسونه این راویان متهم به دروغ روایت شده کیه ریورسو ماکروکی صدقه ذقيتي از فرقد الصبغي از مرة مرة مرة مرة الطيب عن ابي بكر صدر الدين موسى الدقيقي ابو ابو المغير ابو المغير البصري ابن بعين نسائی ابو داود دولابی و ساجی و برحاتن تصعیفش میکنن امام حافظ ابن حجه چنین میگه صدوق له و اوحان فرقه سبقی امام ابن حجه چنین میگه اشتباهاتش زیاده اشتباهاتش governson Sílonик arr ڋ statistically gift bus sh shi bod Jiad guf kimi rot baish khodja kararo mi Jeaner bulun ka. no p Obrigit. boonka. Monka gruset. Bà morre, morri abnish rahshil bural hamdani, oh abumdani bu избright ismailey لیکن را کسی ر ختا داریم که این رتبه ای چیه این چین راهی اسنادی که در چ چیزی باید به چیه ضعیف جدا. حال من الهن من با این مثال هایی که امام به ظحره میاره من این چین کنم مثال اول در به مطلوب کورد مثال دوم در بحث منکره بود اون منکری که ما گفتیم این چیلی لمس میشه که مطروح در نزد امام زهبی دو نوعه درسته؟ متروخ که همون ضعیف جدا هست یا متروخه و یا منکر که نوع اول سلسل رابیانه متهم به دروخ درش بود نوع دوم چی بود؟ رابيانا ممكن. كثيرا اشتباهش زيادة مثل فرقد ابن يعقوب السبخي. اما مثال السفوم. جوائبر عن ضحاق على ابن عباس. ضحاق ابن مضحم اللي هلاليك معروفه. جوائبر ابن سعيد العزي زعيف جدا. امام الحجر بيقول شيء. ضعيف جدا. كينا بضا اصداد شيء منكار حافظ ابن عمر العدني عدن حكا ومن أبان عن أكرمه حافظ ابن عمر ابن ميمون العدني الصنعاني زيفه الحكا ومن أبان العدني ابن ريسى الزيفه أكرمه خب إمام إمام هذا من طبيعي مثال آخر توز پایینترین نوع احادیت زعیف جدن که دو تا راوی زعیف در یک اثناز قرار گرفتن و اشباه ذلك من المتروکین و الحل و بعضهم افضل منبع و امثال اینها از راویان متروک و حلاق شده که بعضی ها از بعضی بیره بهترند یعنی مثلا آن المثال آخری از مثال های قبلی کم ترد را به خاطر همین هیچی این راویانی که مطروف باشه و زعفشون بسیار باشه در علم حدیث به نام اوحال ارسانی دردشون یاد میکنم سندهای واهی سندهای بسیار ضعیف که رضبه هاش شروع میشه اوحال ارسانی در بحث ربایت های اوحال و رامر و هم در این زم نوشته شده بخت موضوع را ان منتقل می کنیم به جلسه آینده کسی تا این تا چیز سوال داره امام اول سنت اول عمرو بن شامیر بود جابر جعفی حارث عمرو بن ما مغوثی که ابن حبان میگه که ایرب الموضوعات حادث موضوع رو باید میکنه جوز جانی میگه دائقون ترداب یعنی حد اقلش متهم بدروغه چون ما بقتی قبل میکنی که مثلا یه روی دروغ دونت که جرحش مفتح باشه صراحاتا اگر بگه که عالمی از علمان بگه که دروغ هست ما دیگه حکم یقینی یقینیش میدین و حادثش موزه لیکن الان یه شرطی متهم باشه متهم به دروغ مثل عبرون شمر این چیه روایت ها مکروف این خلاصه بحث احادی فزایی دیگه سوال اشتیار سبحانه کنم بحمده سبحانه کنم